چه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی که حال ما نچونین بودی ار چنان بودی بگفتمی که چه ارزد نسیم دوست گرم به هر سر موی هزار جان بودی برات خوشدری ما چه کم شدی یارب گرش نشان امان از بد زمان بودی گرم زمان سرفراز داشتی و عزیز سریر عزت خاک آستان بودی زفرد کاش برون آمدی چو قطره عشق که بر دو دیده ما حکم او روان بودی اگر ندائره عشق راه بربستی چو نقطه حافظ سرگشته در میان بودی